بسم الله الرحمن الرحیم الله هو لا الہ الا بالله ما در توحید یک تا پرستان گفتیم که سیر سعودی داریم که من الخلق الی الحق از خالق سوی خدا که اینجا آیات الهی دستاویز ماست برای این سیر که آیات الهی رو می‌بینیم و از اینجا منتقل به وجود خدا می‌شیم بعد یک سیر من الحق از حق از خدا به خدا چون جو درباره سفات خدا بحث میکنیم و یک سیر نزولیست بر خلاف سید اولی از خدا به خلق راجع آفرینش و پیز رحمانی و توحید افعالی پروردگار صحبت میشه بعد وقتی که این قصد تموم میشه به ما میرسه میرسیم به توحید عبادت یعنی حالا که پیز خداوند به طرف ما آمد هم ما رو خلق کرد ما رو هدایت کرد ما رو روزی داد حق پیدا میشه برای خداوند بر ما و ما باید حق شکرگذاری و عمودیت او رو انجام بدیم این سیرها رو همه رو تعقیب کردیم و دنبال کردیم و این مسئله تویید عبادت ما متشای میکنه که هفته پیش به تفصیل صحبت شد حالا ما برای اینکه که حق خدای تالا رو عدا کنیم تا حدی که استطاعت داریم چون حق خالقیت بر ما داره حق روزی رساندن حق هدایت ناتار باید از خود او بپرسیم که ما چه کنیم که حق تو عدا بشه و اینجا لزوم نبوت پیدا میشه که نبی بپرسه و به ما بگه که این اعمال سارها انجام بدید اینطوری تا موجب رضایی من بشه بنابراین می‌رسیم به مسئله نبوت. در مسئله نبوت مشهوره که دین اسلام در اثر اعمال بده اشخاصی که منتصبه به اسلام شدند، دین خشنی است، دین سختی است. ما می‌خوایم ببینیم که قرآن کریم در این باره چی گفته و آسانگیری و سختگیری در اسلام در کجاهاست؟ کجاها آسان گرفته و کجا سختگیری میکنه یعنی در همون توحید عبادت اونجا این موازه آسانگیری و سختگیری رو خواهیم بررسی کنیم به عکس اونچه که تلقین کردن اساس دین اسلام بر آسانگیریه قرآن کریم این اصل رو به های گوناگون بیان کرد یکی در سوره نسا فرمیده یوری دلا ان يخف فپنکم و كل انسانو ضعيفا خدا ارازه داره به شما تخفیف بده زیرا انسان ضعیف آفریده شده این زیرا انسان ضعیف آفریده شده تعلیده تخفیفه یعنی چرا میخواد تخفیف بده مالی که انسانی موجود ضعیفیست در برابر حوادث تحمل نداره از بین میره باز در آیه دیگه که در سوره حجه میگه مما جعل علیکم من حرج خدا زر دین بر شما حرج و سختی قرار نداده در آیه دیگه که در سوره بقره است میگه یورید الله بکوم ولیسر و لا یورید بکوم الاس خدا اراده آسانگیری بر شما داره نه سخت گیری در سوره شریفه اعراف اونجا که ذکر نبی امی است که در تورات انجیل به وجود او اشارت داده شده میفرمد و او انهم اسرهم بار سنگین رو از اینها بر میداره و یزع او وقتی که با ان متعدی باشه این و نوم معنی گذاشتن نیست معنی برداشتن و وزع انهم اسرهم و الاغلا کاونت کانت عليهم این پیامبر آمده بار سنگین رو برداره از مردم و هایی که به دست و پای اینها از کم بسته شده اینا رو همه رو باز بکنیم یعنی تکالیف مشکلی که در عدیان پیشین ولی مردم بوده در این دین نیست تخفیف پیدا میکنیم باز در سوره بغله میگه رب من ها ولی تو همه نامالات ها قتل نابه از قول مؤمنان یه دعای مستجابی رو نقل میکنه این دعا مستجابه که خدا نقل کرده میگو میگن خدا بر ما چیزی که طاقتشو نداریم تحمیل نکن خدا در واقع میخواد بگه این دعا رو استدابت کردم ربنا لا تاخذنا این نسینا او اختعنا خدای معاخذه نکن ما رو اگر پراموش کردیم چیزی رو یا خطا کردیم این مجموع آیات به ما نشون میده روح تسامح یعنی آسانگیری در اسلام هست کتاب مقدس اسلام اینا رو گفته حالا همین روح در احکام تقسیم شده داخل در احکام شده هر حکم مشکلی یه تفسره میگیره مطابق این روح که آسان بود بنابراین این یه اصلی است که تفریع شده در احکام اسلام حالا قبل از این که به این تفریعات برسیم در سنتم تایید شده این شکلی مثلا پیامبر خدا فرمودن که بو استو بالحنفیت سمحه اینو جلالدین سویتی در الجام مستقیر آورده من مبعوض شدم به دین توحیدی آسانی حنفیه اصل کلمه حنفه یعنی مالا الالحق جنفه برعکسشه مالا الالباطل حنفیت یعنی آینی که به حق گراویش داره به توحید گیره با اصطا به هنفیت سمحه باز در همون جامعه احالی سویوتی آمده از قول پیامبر این نهازد دین متینان این یه دین استواریه این دین اسلام فعاقلو فیهه به رفق با رفق و مداراتوش حرکت کنین ولا تو کرهو عبادت الله الى عباده عبادت خدا رو در نظر مردم مکروح و زشت قرار ندید در اثر سخت گیری آسان بگیرید بر مردم رسول خدا فرمودن باز داره وقت که پیامبر یک دسته ای رو می‌فرستادن برای جایی برای تبلیغ و اینها می که یست رو ولا تو رو آسان بگیرید سخت نگیرید و بشت رو تو بشارت به مردم بده تنفر ایجاد نکنید اینا رو باید تو این محیط خود اونیان رو بگید این بخاری در جلد اول کتاب العلم از فیانبر آورده همه موافق با قرآنه حدیثی موافق با قرآن اینطوری وقتی اونجا میگه دین برای شما سفنی نیست خدا آسان گرفته انسان ضعیفه این روایات درست میشه این روایات موافق با قرآن میشه و عقدم موافقه باز در حدیث دیگه هست که در کتاب جامل احادیث جلال دنستوطی فضا عمدت کن بشای این فعتو من هم استطعت هم وقتی که من به چیزی به شما دستور دادم که این کارو بکنی به اندازه استطاعت تون کارو انجام بدی اگه دیدی دیدی جایی سخت استطاعت نداره اون ساقط شده از شما چرا؟ بر اینکه که خداوند فوق استطاعت از کسی نمیخواد لا یک کذب الله نفسن الا وسعها پس اینم موافق با قرآن حالا این مطلب آمده وارد ابواب مختلف فقه شده ما که میگیم ابواب مختلف فقه به فوقه ها مراجعه نمی‌کنیم چون فوقه هر کدوم نظری دارن به مصادر فقه مراجعه میکنیم یعنی کتاب و سنت مصادر فقه برای ما اعتبار داره یعنی اون که فقه از رونا تنظیم میشه. ما به خود دست اول مراجعه میکنیم که آیات قرآن و احادیث صحیح است که با قرآن مبافقن. میریم اول مثلا سر باب تهارت. اونجا میریم پیغمبر فرموده لولا ان اشقه علا امتی لعمرتم اند کل سلاطن به وضوعن و معکل وضوعن به سباک مصند احمد احمد ابن همبر در نصران میگه اگر بر امت من سخت نبود میگفتم برای هر نمازی وضوع بگیرم و با هر وضوعی مسواک کنم ولی نکردم این دستور رو ندادم تو سخته و الله اینقدر پیغمبر به تهارت و بوی بده دهن و اینها متنفر بود ازش که حتی وقتی که در بیماری فوت بود در سیره ابن شام هست که تو اتاق آیشه بود آیشه هم نشسته بود پیامبر دیگه تقریبا اون حالات قشوه و سکرات مرگ بود دیگه یکی از بستگان آیشه مثل که برادر عبدالله ابن زبیر اینا وارد اتاق شد پیامبر دست اون مسواک بود یه شوبای داشتن عربا که دندونشون رو مسواک میکردن میداختن کنار دست اون بود پیانبر خیره شد به اون آیشه فهمید که پیامبر اون رو میخواد بعد اون رو از گره به پیامبر داد پیانبر با اینکه حالش خیلی بد بود نه به سختی به دندوناش کشید و یعنی داخل طرف این در اون لحظه های آخر عمر نمیخواست دهنش بوی بد بده این ها این میگه اگر سخت نبولولا ان اشق علا امتی و هم به وضوعن به کل صدات امر میکردن برای هر نمازی وضو بگیرن و مع کل وضو استواکی سواک همون مسواکه که ما در فارسی میگیم در همون باب تهارت داره که یکی از اصحاب پیغمبر در سفر بودن این یا سفر جنگ بود چه مجروح شد بود بعد احتیاج پیدا کرد بکنه در اون حال که اول قسط بکنه جراحت هست و اینا طعیمون می‌کنه نماز اصحاب مقدس بعضی هاشون گفتن نه اتوان تو بر پست بکنی گست کرد و مرز بعد آمدن پیغمبر گفتن فرمود قتلو قتله هم الله کشتن این بیچاره رو بعد فرمود که لولا سالو از عالم یعلمون چرا بخشی ندونستن؟ نمیدن بپرسن خودی مردم رو از به کشتن دادن یعنی اسلام در عبازت سختگیری نداره مردم که این کارو میکنن باز در یکی از همین جنگ ها در همین موارد بود که هوا تیره و تار شد عرب میگن اجه اجه یعنی گردبادی پیدا میشه و چنان قبار که چشمش رو نبینه هر کسی دیه طرف پاستاد نماز خوند حالا بعضی از فقه ما میگن بعد واسه احتیاطا چهار طرف نماز بخونن. دیگه بعد آمدن مدینه از پیغمبر پرسیدن اینکه اتفاق اون پیغمبر گفتن که عینما تو بلو تا سمبه الله هر کدوم هر طرف به ایستید به طرف خدا ایستادید قبله برای وحدت سمت باشه ما یک سمت واحد داشته باشیم زبان واحد وقتی استقرار پیدا میشه خدا همه جا است آقای قرآن در سوریه بغره بیمار پیام رفتن عیادتش به که سل قائما من نماز بخون فا الزم تستته اگر دیدی سخت برات استادهش نداری فا نشسته فا الزم تستته جنب. اگر اونم قدرت نداشتی به پهلو نماز بخون وَإِلَّمْ تَسْتَتَ فَمُسْتَلْقِيًا تاغواز اگه اونم نتونستی همون تاغواز ذکر خدا رو بکن از تاج و جام و اصول. فی احادیث الرسول رسول منصور علی ناصبه از علمای از هر که این احادیث و احادیث سحابه غالبا جمع کرده از نماز بریم به زکات پیامبر مأمورانی میفرستاد که در خود قرآنم هست و آمدی علیه ها اینا زکات رو میکردن بعد پیامبر پرمود یاکم کرائم اموال ناس به پرهیزید که از ارزنده ترین اموال مرزم بر ندارید به اون زکات ببین خودش هر داد برگاه این زکات منه و پول نبود اون وقتی گسفن میدادن مثلا چیزای دیگه میدادن برای فقرا نه نیگه انتخاب بکنید این شو به مردم فشار نیارید یاکم و کرائم اموال ناست اموال ارزشمند مردم رو کریم اینجا کرائم به معنی همون اموال مردم ایم. بعد زکات کسب و تجارت که در قرآن هست که بعد هر نماز خونی زکات بده چه کاسب باشه چه تاجر باشه حتی اداری ها میگن کس دیگه کار میکنه پول میگیره در ازایون صدی دونیمه اینقدر کمه که هر کسی بتونه بده چلیک صدی دونیم خیلی کمه دیگه که مردم همتونه بوده خمسی که آیان میگن بیس درصده اون دونیم درصده زکات چقدر تفاوت داره جزا مردم میتونستن زکات ببینید آسانگیریه شرای در حج پیانبر گیدن که یه شخصی روی شانه های دو تا پسرش دست رو گذاشته یا زیر رو گرفتن و در حالی که به سختی راه میره پاهاش به زمین کشته میشه داره از طرف مدینه میری مکه فرموندن چرا اینطوری میکنه؟ فرمت چرا آمده؟ چرا نظر کرده که پیاده بره از مدینه به مکه پیانبر گفت یا شیخ ارکب ای شیخ سوار شو خدا از نظرت بی نیازه نظرت میکنین دو نفر رو یا افتار خودت کردی خودت هم با این سختی پس اسلام دستور ریاضت نداره دستور عبادت داده و عبادتش هم همش توش آسانگیری داره در جا ده ساعت از زافه و مرزا بر ضعیف بر مریض اینا جااز نیست حمله حملم کرده باشن لخره مریض ها راحت بکنه. و حتی اونجا میگه قاتل و فی س الله دللا این یا نکن به اونا که به جنگ شما آمدن جنگ بکنین نمی خودی بری سر مردم بزنید تو سرشون. و دا چقدر دو تجاوز نکنید. الله الله یاب بل مع تدین خدا مت آوزین اینجا دوست نداره در سو بغلد باز در سوور نص میفرمد که اگر اونها القک کمصددم اظهار صلح ها آشتی به شما کردند گفتن ما نمی‌کنیم. نمیکنیم تما الله ل کام عليهم سبیدا خدایش راهی برصددون ها برای شما قرار نداده به روی شما باز نکرده. حق ندارید جنگ بکنید باشون متجاوز که به شما حمله میکنه با اون بجنگید و اگر حتی دشمن وسط جنگ اینجا نهو لسلمه فجنهده ها و الله علالله اینهو هوا سمیع العلم یه سلم داریم به معنی آشتی یه سلم داریم به معنی صلح عارف کنم که یا اون سلم معنی اسلام اسلام آوردن تسلیم شدن اینجاست سلم یعنی اگر تمایل به صلح نشون دادن تو هم تمایل نشون بده بر مبنای همین آیه شریفه صلح بیا انجام شد با مشرکین کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا بعث سریا تن پیامبر وقتی سریعی میفرستاد سریه با قذوه فرقش این بود که در قزوه خود پیغمبرم شرکت میکردن سرایا سریعه ها بود که پیغمبر یک کسی رو میفرستاد که اون بره جنگ بکنیم ازا بعض اساس سریعتن دعا به امیرها امیرشون رو صدا میکرد فعجلسهو الى جنبه کنارش میشوند و به او بین یده و یاران او رو که با اون امیر باید برن اینو روبرو خودش میشست امیره میشه میشست کنار خودش اونا صف کشتن جلوی پیامبر مقال سپس به اینا اینطوری میگو سیرو بسم الله به نام خدا سیر کنید حرکت کنید و به الله و پی سبیل الله و فر رسول الله در راه خدا برای خدا در راه پیامبر خدا لا تقدرو قدر به معنی نیرنگه نیرنگ نزنید ولا تغولو خیانت مبرزید ولا تومستلو مسله نکنید دشمنو اگه کشته شد تیکه تیکه قضا قضاش نکنید ولا تخت او شدرتن هیچ درختی رو قطع نکنید الا انتستر رو الیها مگر اینکه که مستر شدید جلوی شما رو گرفته انبوه درخته پیر دشمن میاد، مثلا حال مشکلاتی برحال برای راه شما ورا تقت روشتای خنفانیا یه پیره مردی که دیگه میمیره حق ندارید بکشید ورا صبیه یا کودک رو نکشید برام رعتن هیچ زنی رو حق ندارید بکشید امتاق الاسماع میغریزی جد اول صفیه سی و وسایل شیعه ابواب جهاد عدود میبین بر سر تعذیرات تعذیر دون حد از حد پایینتره حد مثلا فسکان تازیان زدن قساس کردن یعنی تازیر خانمانو میگیرن چوبستان مثلا برای هجاب تازیر میکنن یا اشخاص اخیلان رو... یه فیلم میدیدم که یه نفر رو برشور بردن جمعیت هم بودن یکی از یعنی لاتماتا گردن کراحتا بود پاستارهی میزد تو کلش کتکش میزد جلو تخفیفشان پیدا کنه سبک بشه و برای خدا پرموده که عقید و زب الحیات اثراتهم مسلمانان رو ارز کنم که ترف بکنین اگر دغزشی کردن الا الهدود الا فی حدود، مگر در حد قطر کرده باشون امریست دولا ولی در این کارهای مختصر ولی زا شافعی به همین رعایت استناد کرده گفته تعذیر اصلا در اسلام نیست نباید تعذیر بکنیم یه چیزای کچیک رو باید عفت بکنن بگذارن دامن هی مردم و کتک بزرن رو فلان کنن از کنن مگر قطعی شده باشه مسائل مهمتر شده باشه اونها حتی در حدود هم مثلا در سور مبارکه ما اید آمده الذين تابوا من قبل ان تقدر و علیهم فعدم ان الله غفور و رحیم مگر کسانی که توبه کردند قبل از اینکه شما قدرت در اونا پیدا کنین خودشون اومدن گفتن آقا ما اشتباه کردیم شما بعد ببخشین اونا رو چون خدا غفور و رحیمه سوره سفر پیمائده ان ابن مالک ان ابن مالک خادم رسول الله بوده از روایت شده ما را تو رسول الله رفع الیه شیء فی قصاص ندیدم که هیچ مورد قصاصی رو پیش پیغمبر بیارن یک کس سزده کسی رو کشته الا امر بالعف فی مگر اینکه در جلد اول میگفت عفو کنید اشتباهی شده بگذرید اگه باز پا فشاری خب دیه بگیرید نکوشید طرف رو اگه باز هم طرف اصرار می‌کرد نه بچه‌مو کشته بعد قصاص بشه اون خون دیگه خونخویه طرف ناچار قصاص میشه. یعنی میگه که ما رأی تو رسول الله رفع علیه شیء فی قصاص ندیدم هیچ چیزی که در قصاص باشه به پیامبر عرضه بشه الا امر به العف فيه مگر اینکه پیغمبر امر به عفو کرد کتاب و تاج جلد سوم صفحه 36 پیغمبر خدا از فدک یعنی ترور یعنی قافل کشی ترور در اس یک کلمه است به معنی وحشته ترسه بعد یواش یواش برای قافل کشی به کار رفته و قافل کشی در اسلام بهش میگن فتک با فا و تید منقوته تای منو و کاف میگن نها رسول الله ان الفتک پیغمبر از ترور از قافل کشی نه کرد نه ناجوان مردی است کسی استقاق قد داره بعد قا دولت تخالت کنی قاضی قزا واسه بکنی مگر جنگی باشه که دیگه اون طرف هم میکشه اینا جنگ اون بحث شدم در آثار داره که یه وقت معاویه آمد مدینه و مهمان عایشه شد چون برادر عایشه محمد ابن ابی بکر به دست یاران معاویه کشته شده بود بد کشته شده بودم توی شکم یه خری او رو گذاشتن خرار آتش دادن خره مرده خب این توحین هم میخواستن بکنن در حالی که خیلی جوان محبوبی بود و حضرت تعمیر بعد از فوت عبو زن عبو رو به نکاح خودشون درآوردن ولی این پسر پسر عبو بود و تو خونه علی از کنم که رشد کرده اینها و تربیت علاوی گرفت خیلی به حضرت من بود اینها و عثمان هم که اینو پرستادن به مصر حاکم مصر اونجا غلبه کردن سپاه ماویه بر او این بلا رو به سرش آوردن خب عایشه خواهر او بود دیگه به ماویه گفت نمی هستی من کسی رو پشت پرده گذاشته باشم یهو تو حمله بکنه تو رو بکشه این بلا رو به سر برادرم آوردی گفت نه من در خانه امنم در خانه رسول خدا هستم فرموده که یاکم ول فرک به پرهیزی از فرک نه ها رسول الله پیغمبر از ترور قاپل کشی نه کرده مرزانی بیا جلو به جنگ مثلا میگم آیشه گفته ما خویره رسول الله بین الامرین الا به ای سره ما هیچ وقت پیغمبر بین دو امر اختیار زاده نمیشد، مخیار مخیر نمی مگر اینکه اون آسان تره می گرفت مالم یک اسما به شرطی که به گناه نمیافتاد، تو اون به گناه نمی فه این کان اسما کان اب ادن ناس نه ولی اگه گناه بود دورترین فرد از اون گناه خود پیغمبر بود و من تقم رسول الله لنفسهی و پیغمبر هیچگاه برای نفس خودش انتقام از کسی نگیریم اللا انتن که حرممت الله مگر اینکه حریم خدایی پاره می شدد توهین به طام می شود. به توهید میشون اون وقت کلپرش رو اجرا می کرد معلوم میشه که پیامبر خدا یا آدم ای و حرف پا نبوده توهین به خودشو شد کنار میذاشته از احکام خدا برد. حالا میخوایم ببینیم تربیت شدگان پیامبر مثل علیه علیه السلام در درجه اول که افزاد صاحبه بوده از نظر ما اینا چجوری بودن؟ علیه علیه السلام فرموده مورد توجه قضاعت ایران من اقرده انده تجریدن کسی که اقرار کنه در وقتی لخصش میکنن او تخبیفه یا میترس نون نشه او حبسن یا حبسش میکنن او تهدیدن یا تهدیدش میکنن این بله ها رو به سرش بیارن اقرار بکنه بگه بله بله من این کار کردم فلا حد علیه حد از او برلاش میشه بی اعتبار این اقرار و اعتراف چون این اعتراف با شکنجه شکنجه هم گفته حبسی بکنن دیگه چه برسته بخواست شلاش هم بزنن کینه گفته که آقایون قبول کنند فروع کافی نه علمای اهل سنت در جلد هفتم صفحه 261 و تحذیب الاحکام شیخ طوسی دو کتاب از کتاب عربعه شیعه از علی علیه السلام این نقل کدن من نمیدونم دیگران چی میگن باز داره این علیه علیه السلام اتیب بمرعتن یک زنی رو نزد حضرت آوردن مَعَرَجُلِن فَجَرَ بِهَا با مردی که با او فجور کرده بود با اون زن یعنی زنا کرده بود فقالت اون زن گفت استکرهنی بالله یا امیر المؤمنی. به خدا قسم این منو بادار کرد فدره علی السلام انحل حد حد از او بردار برو بادارت کرده دیگه دیگه حتی اکتفا کرد به قول اون زن آب از کجا واضارت کرده باشه؟ شاید تود خودش هم تماید داشتی؟ نه چرا؟ بلی که تود را حدود به شبه این یک اصل فقهیست حدها به محض یک شبهی پیش میاد بعد به نفع مجرم بره یعنی خشونت اسلام نمی پسند به نفع مجرم تمام میشه تود را حدود به شبه این یک اصل بزرگ فقهیست شی او سن دیگر گفت عطا شابند امیرالمؤمنین یک جوانی آمد نزد حضرت فقر رنده او به سرقت نزد حضرت امیر اقرار کرد که من سرقت کردم فقال علی و قال علی علیه السلام شاب اراک شابندا باث بهبتک فرمود من یک جوانی رو میبینم که اشکال نداره هبه کنیم ببخشیم او رو فانت اقرا شيئا من القران چیزی از قران بلدی بخونی قال نعم سوره سور بقره سوره بقره حفظم فقال عليه السلام قد وهبت يدك بسوره البقره من تو رو بخشیدم به سوره بقره آقا اسلام اینطوریه اینقدر تفاهم درش هست اونجوری اشعث بن قیس به حضرت علی اعتراض کرد گفت تركت حدودا من حدود الله از تا آیا حدود خدا رو سرک میکنی؟ گفت نه تو مسئله رو بلد نیستی اگر خود طرف هم اقرار کرد اظهار پشنیمانی کرد اینجا امام حق داره به اون کسی که میگیرنش رو برده اقرارم هم کنه برای اون که حد برد این تفسره ها برد در اون میشه رو من غلط کردم اشتباه کردم پشنیمانم پلانم فرمود امیرال که رسول خدا فرموده قاضی اگر شب بیاد منزل شاکی مهمان بشه اون وقت فردا بخواد از کام که در برابر اینو مخالبش قضاوت بکنه درست نیست مگر اینکه اون طرف هم مهمان شده باشه تایی با هم برو پیش قاضی دیگه اون قضاوت بکنه شب با هم نشستیم سر سپرو و خوشحامت گفتم به تو قضای من و و علاقهی پیدا شده حالا پرده میخوان بین تو و مخالفت قضاوت کنم تو رو زیر شلاق ببرم نمیشه دیگه ادالت اجرا نمیشه غالبا فروع کافی جلده هفت سفیه چارسد سیزدن این آثار شیعیه من از اهل سنت میرم از دامال احادیس از هر کم که کتاب های فقهی سی بخارینا میرم هم از این طرف که یه طرفه نباشه. حالا بریم اون طرف قضیه رو ببینیم شدت عمل اینجا همه تخفیف بود تو اواب و مختلف فقر که من خلاصش کردم تخفیف بود شدت عمل کجا هست یه مقدمه راجع به شدت عمل باید بگم و اون چه که مردم از اسلام میشناسن در امور اخلاقی شدت عمل و پاپشاری داره نه در احکام اجتماعی و کیپریات و اینها حضرت تعمیر در نهج البلاغه در خطبه قاسعه که خطبه 234 نهج البلاغه است میفرمایند که فان کان لا بودمن اگر شما ناچارین از اولاً عصبیت یعنی تعصب خیلی حضرت بدگویی میکنه و میگه امام المتعصبین ابلیسه امام المتعصبین ال... بابا خدا به تو میگه در برابر آدم تعظیم میکن من چنین هم من پلا حرف خدا هم قبول نمیکنی حضرت اونجا خیلی بدگویی میکنه در خطفه قاسه از ابلیس بعد میگه او امام المتعصبینه ابالت نهجال بلاقست بعد آخرش میگه فا انکان لابد من اگر شما ناچاری تصوب نشون بدین فلیه کن تصوب کن مکارم الاخلاق و محامد افعال و محاسن الامور آقا تصوب در این باش که دروغ نگی تصوب در باش که بخشش بکنی تصوب در این باش که غیبت نکنی تصوب در این باش که تومت نزنی نه تصوب در عقاید خوش و غلطی که هی بسا دلیل میارن آی قرآن میارن زیر بار نمیری میخوای پاپشاری داشته باشی در کارهای خیلی پاپشاری داشتون چه بیانات قشنگی این رو سونا که صحابت آزادی و رفت تحصیب میکنن بعد خون که خبرم ندارن که تو متون اسلامی همچین جواهراتی هست و اینها بعد ازت میفرمند که خوب حالا میخوای تحصیب داشته باشی تحصیب در این داشته باش که خودداری از ستم کنی انصاف در برقابه حق داشته باشی خشم خود خودتو پروب کزم قیز کنی اجتناب از فساز در عرض کنی در این عمر پاپیتاری داشته بود، ولی زا با این که خبارج تون زیاد میکردن میانن در مساده توهین به حضرت امیر میکردن میگفتن اشترکتا بله شریک خدا قائل شدی. می فرمود: لا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا في حسبه من شما رو جلوگیری گیری نمی از مساجد بیایید ذکر اسم خدا رو بکنید ولا نمنعكم الفي ما دامت ایدیكم مع ایدینا تا وقتی که با ما هستید قناعی چیزی هم باشه بیت المال رو تقسیم به شما میکنیم بیت المال ولا نقاتلكم حتى تذعنوا و با شما نمی جنگیم تا اینکه خود شما شروع کنیم اگه شروع کنیم ما دفاع میکنیم یعنی یه عده ای که حکومتش رو میخواستن دگرگون کنن از جا برکنن و شروع هم کرده بودن حضرت اینطوری باشون برخورد میکن اخبار ثبات دینه بری در نهتون براغم می هست من تو کتاب و آثارم آوردم خشونت از دوران عموی ها شروع شد در اسلام. حتی کار به جای رسید که یک خلیفه عادل اموی که عمر بن عبد بود گفته که لاجا از کل امتن به خبیثها و زینابل حجاج لاغلبنا علیهم اگر هر امتی خبیث ترین رو بیارن ما حجاج و یوسف رو بیاریم بر همه غلبه میکنیم حجاج و یوسف یکی از سرداران همین خلافای ارزکنبنی آمگیه بود کاملا تواریخ ابن عصی جلد چارم صفحه پونساد اشتاد نو وگرنه حضرت امیر حکومتش حکومت ادالت بلکه محبت و نرمی بود شمسدین سرخصی فقیه بزرگ هنفی در کتاب المبسود که من دارم در منزل محمد الله تعالی در جلد دهم ده صفحه سبه آورده که کسیر حزلمی گفت روزی در مسجد کوفه وارد شدم پنج نفر از خباره داشتن با هم صحبت میکردن بلند بلند یکی چون قسم خورد که من علی رو میکشم این قیل از ابن ملجم بود منم خیارش رو گرفتم و علی رو تو کشیدم بردمش منزول حضرت علی گردن کنفت قلدار بوده به گفتم که اسم یارم سوار منقری بود گفتم این سوگند خورده که شما رو میکشتم علی فرمود که رهاش کن به ما چطور راهاش کنم سوگند خوده شما رو میکشه فرمود حالا من اون رو بکشم هنوز که من نکشته برش کن بره الله اکبر خلیفه کشور شخص نفر اول بلرو قسم خورده خوارجام خیلی به قسم‌هاشون میکوشن ما رو بردن اونجا علتش که من نکشه ولش کن بره الله اکبر اسم اینی واقعا در اروپا و امریکا میگم نمیکنن اینطور باشه حداقل یه زندان میکنن باطوی میکنن فلان میکنن اگر نه حالا شرق اینی که دارو میگم میکشن و الا در غرب هم باز بازویی میکنن زندان میکنن بازداشت میکنن پس جاهایی که اسلام به استراشدت عمل به خرج میده اینا که همش التاف و تسهیل و تسامح بود یکی مسئله قتل نفسه من قتل نفسن به غیر نفسن او پساغلن پل عرض پک انما قتلن جمعی آو هر کسی دیگری رو بی گناه بکشه مثل تمام مردم جهان و کشله هیش کتنی. چواری نداده در هیچ دینی، هیچ قانونی ما این چیز چرا؟ به که این بی ها که من کشتم، ظُلمی که به من نکردی. پس بنابراین دیگری هم اگه به جای این بود، من باش اختراپ پیدا میکردم، ظُلمی به من نکردود، اونم میکشتم. اینم یعنی به خاطر ی عزتی که نخواستن، زل که عل نکردی. وقتی من بیگناه ها میکشتم، هر بی گناهی جای این بود، باو اختراپ پیدا میکردم، ممکن هم بلا رسنم بیارم. بنابر که انهو من جهانی رو کشتم هیچ دینی نیومده. حقوق انسان ازش خون انسان رو اینقدر بالا ببره الله حتی بره دوبام الراشی والمرتشی فه نار به دهنده و رشبه گیرنده در آتش یارو بدبخت بیچاره مارش رو برده بودم بهش گفتم مارش رو کن گفت طرف من پول داره رفتم یکی رو داره غازی مال منم برده قاضی رو خریده نمیدم برش کردم مرزو میتواری میشن بی اعتماد میشن دیگه به دولت ار راشی و المرتشی فنار، نار هر دو در آتش هم کرده اینجا نمیگه تعذیرشون کنین نمیگه در آتش هم اینا شهادت به ناحق یکونو قبوامین ابل قصد شهده ولو علا انفسکم ابل و ولدین ول آقا باید بریم مح... در محکمه بگی مادرم ظلم کرده بر زد مادرت بر زد پدرت در خیلی میدونی ظلم کردن شهادت بدی که اون مظلم و بیچاره محکوم نشه بگی من شاهدم مادرم ظلم کرد به اون پدرم ظلم کرد اول والدین ول اقربین هرچن قمقیشتون باشن این دین چه سلابتی داره در مسئله اضافه قرط نفس کجا برده تهمت که معلومه دیگه و من یک سب خطیعتن او اسمن سم یرم بهی بری او فقد احتمال بحتانن و اسمن مبینا که سوره شریفه نسائه در ظلم بلاد والیان اگه ظلم میکنن حدیث نبویست روز قیامت والیها رو دست بسته میارن رو اصهای حکومت رو به محاکمه کشته میشن اگر ظالم باشن سر نگون بشن در آتش اگر نباشن دستونه رو باز میگن بفرمیم شما آدم خوبی بودی <تصحیح> ببین چه خبره قطعی تو لعنها و نفرینهای پیغمبر باید بفهمیم چه گناهانی خیلی از نظر پیغمبر بد بوده ملعون منظب حل غیر الله ملعون کسی که برای غیر خدا حیوانی رو سر ببره زب بکنه از جامال احادیث ملعون من عمله به عمل قوم لوت ملعونه کسی که عمل قوم لوت رو انجام بده لعنه خدا بر اونه لعنه رسول بر اونه یکی دیگه ملعونه از ازا زهرت البده افی امتی فعلالعالمه ان يظهر العلم و الله فلعنت الله کافیه روایت شیعه سهد وقتی که ها در امت من آشکار میشه عالم بعد علمشا در مخالفتون آشکار کنه نه سکوت کنه و الا لعنت خدا بر اونه چرا سکوت میکنن علمای دین وقتی مینن، این همه اجحاف میشه این همه ظلم میشه این همه دزدی میشه این همه فلان میشه از کنم که سکوت میکنن ملعونه کسی که سکت بکنید حدیث در کاپی شیعیان نقل کرد سنیا مالک در مبتح نقل کرده از ابن مسعود از رسول خدا قال رسول الله نیست انا من تشب به همین نساء به رجال ولا من تشب به همین رجاله به نساء. از ما نیست مردی که خودشو به صورت زنان در بیاره و زنی که خودشو به صورت مرزان در بیاره چشبه بکنید آه خدا زنی آفر مری یاپله این چه بازی است که معتون چنین میکنه قیاف های زننی درست میکنه چش هاتون میکشنا بلند میکنین معلوکس که این کار می کنه پیغمبر بر زننش کرده لیس هم نامن ذل خود به حق قل و ده به درل جاهلییه از مسئول جا سقیه نقل کرده ما رو سوتی. نیست از ما کسی که در مصیبت به گونه بزنه. یار ایبان به و با ویلا و با سبورا بکشه از ما نیست کار جاهلیت بوده مؤمن وقتی که مسیبتی بهش میرسه از اصحابت هم مسیبت قال اینا لله و اینا اله راجعون اینو میگن نه ای خود قمه میزنن زنجیر میزنن اگر از ما نیست لعث هم اینا. اینا رو خیلی مهم کرده نمیگه گناهی کرده لعث هم اینا منظر بلخدود. آقا شهید سانی نقل کرده اهل سنت نقل کردن لیسم نامن غشته کسی که فریب کاری در معامله بکنه از ما نیست گنلم نمای جوفروش از ما نیست مسلمان نیست بعد میرسیم به شهر که اکبر کباقره که قرآن خیلی سختیری کرده اونجا اکبرال کبائر الاشلاکو بالله و قتل نفس و اقوغ الوالدین و شهادت و زور بزرگتنین کبائر شرک به خدا قتل نفس، آقه والدین شدن کاری کردن پدر و مادر از کنم که انسان رو نفریند کردن دور شدن و شهادت به دروغه همون چند روز پیش یه کسی گفت رفته بودم تو یکی از همین دادگاه یه مرد بیچاره آمده بود اونجا قاضی پیش گفت تو چنین كردي؟ خود من از این کار خبر ندارم. اینجا دارم هر شواهد تن گفت آقا تحقیق کنید راجب اونا. اینا نبودن اونجا که ما لعوامون شد. اینا یه دسته‌ای یعنی آن که پول میگیرن میان شازده به زور میدن. قاضی خلو به فکرم. بعد بعد تحقیق کنیم ببینيم از این دسته نباشن. اینا پیدا شدن اخیراً. پول میگیرن دست رو قرآن از اون یارو به ذره این بدبختی دیگه شهادت میدن بلی این زن زندان میگه اکبر کبائر از بزرگترین گناهان اینا نمیگه گناه کرد فلا این حرفا پس تصامح اسلام در اون دستوراز بود تا یه چیزی سخت میشود یه پرانچز واز میکن جدیت اسلام سخت اسلام در این چیزاست در اینجا سخت گیری بکنیم نه اون طرف تا تا موی دخترکی پیداست بکشین ببرینش اوین مثلا دختری که از دوستان ما هم کار کردن نماز میخوندی که ترک نماز کرده ترسون درش تفلکا دیگه یه بچه 17 سال مثلا به قدر این مسئله شرک مهم است که و من یشرک به فقط فقط حرم الله علیه الجنه و مآواه النار سوره مائده است. هر کی شرک به خدا بیاره خدا بهشت رو بر او حرام کرده و جایگاهش آتشه آیه قرآنی پیغمبر قال مودا تو ترونی کما عترت النصارى عيسى بن مریم فنما انا عبدالله الله فقولوا عبد الله در سی بخاره قولو درباره من نکنید چون که نصارا درباره عیسی بن مریم من بنده خدا هستم بگید بنده او و پرستاده او محمد آن محمدن عبد هو و رسوله صحیح بخاری جزه 4 پیامبر یه کسی آمد از این بود نمی‌دون درقاپچنا ماشا الله و شئت هر چی خدا بخواد تو بخوای پیامبر پرمود اجال تنیل الله نده من شریک خدا کردی ماشا الله هر هرچه خدا بخواد تنهایی قول ماشا الله وحله ابن کسیر در ذیل آیه یا سی و یک سوره بقره آورده حالا رسول خدا آخر عمر بیمار شده خواهم روزه پیغمبر بخونم یه چیزی رو سورت چشم از کی رو برمیدارره دست دستو میکنه توی قله آب سر تبهایی تند به صورتکشیم در این هم گفته و ان الله اليهود دو نصار ها تخصذ و قور و صالحیهم مساجد یذ وعممت او به ماوس خدا لعنت کنند یهود نقبهایی پیغم رو عبادتگاه قرار دادن. امت خود تو با این جمعات بر می داشت از اعمالی که اونها انجام دادن یحضر امتهو مما سنعو حالی نهر سنت سیره ابن هشام اینا آوردن ببینیم شیعا چی می گن می این روایت بوی سنیگری می میده ما از چیه؟ میخوایم به چاش؟ شکل کتابه مهمه شما چیه ملایزار فقی قافی استفسار ایناست تحضیبال احکام ما از اونا میاریم در من لایزر میگه پیامبر وصیتش آخر بود دا تخذو قبلهن ولا مسجد دا به طرف قبر من نماز نکنین قبله نکنین محل عبادت قرار ندید عبادت چیه تواب کردن عبادت نیست بوسوند کشتن عبادت نیست نذر کردن عبادت نیست با قبر من کارا نکنید قبله قرار ندید طرف فبل و شکر شتر مستذ حرم مواتای مالک هم همین میگه پیام بر آخرین دعاهش این بود اللهم دا و تج و سنن یعبد خدای قبر من رو مانند بوتی قرار نده که پرستش بشه رسول خدا دعاهش آخر عمر با حال بیماری اینطور بوده خب سخن ما تمام شد و شما رو به خدا میسپارم پس معلوم شد که تسامح اسلام در کجاست و شدت عملش در کجا من یه هم نوشتم که چاپ شده تصامح و شدت عمل در اسلام منتا اینجا تکمیل شده اون مقاله چیزایی گفتم که اونجا نیامده